بیتونه بیتونه بیتونه وکن اخواتش از بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله العالمین و الله علی رسول الله الله و آله و آله الطیبین ما لات و دعای ما تو علاوه دعای ما شمايی. الله هم نفرنا و جمعی مشتری ما شما نفر نمیکند. یا آخره که وجب رواياتی که در باب سهر آمده بود و انواعی متعدد ديگري که در اینجا بود کفتیم برای اطلاع, اطلاع برمکنه روایات رو کامل ببینیم در احادیثی که از این کتاب جامعال احادیث رو هم میکردیم رسید بحث به حدیث شماره دیویست و برخشی شماره ده این حدیث رو از کتاب تبول عیمه ابن بستان این رو از علمای شیعنی که رسو از تیف علمای جدید به علمان فیزیک و شیمی حساب میشند دو تا برادرن حسین است یا عبدالله شو حسین و کتابی دارم به نام طبالعیمه که ظاهر عبارت نجاشی مثلا اینکه کتاب کتاب خوبی اثبات میکنه عبارت نجاشی اینطور و این کتاب رو که ما میبینیم که خیلی دربود آقونه حالا بلدی کارهایی و مرمون عجاشی رو که آدم میبینه خودش رای شبهه میشه در یه جایی ای یک حدیثی رو نقل می‌کنه از کتاب کشتی یا غیر کشتی برای دلاته برای حال یک فردی خود اون حدیث ضعیفه و از روحشایی نداره من در وحثای مروش بین قسمت ارز کنم واقعا گایی برای ما شبهه داره که چطور مستم مثل همی به کتاب ابن بستام بستام یشون گفته که کتاب خوبی یا سیار حدیث همچه اسمون که خود ما که نگار کردیم خیلی کتاب وزرگها جلی داره در حال ما چون خیلی مقید به تحبات به کلمات حتی نجاش نیستیم قبول کلماتیشان مشکل بله بله آدم داره همین می شکل میشه چون خیلی دقیق این صافه این رسل مضمون ده این فن خودش خب بلا اشکال از نظیر نداره من. شیخ خب خیلی متساهله ایشون خب انصافا تساهل شیخ هم اشتباه نکنه شیخ خود مبنای خودش مثلا کتاب بوتر مثلا قبول داره بذاشه او بده کتاب این بام مثلا این تساهل نیست اشتباه برداشت دارید خودش تغییر من تساهله یعنی مبنا رو قبول نداریم نه اینکه تساهله اینکه اونا خدای نکرد در اموری که مربوط به دین و مربوط به فرهنگ شیعه بوده تصاحل داشته باشن نه اعتقادشون رویه که این کتاب خوبیه و خبر واحد به حجت میزن او و او احتمال میکن که جزا کسایست که خبر واحد حجت نمیدن و قرائن و تجمعه قرائل مثل ماست اما بعضی جاها وقتی عبادش نمیخونیم با برک مراجعه میکنیم که مسترش و همین انصافن این محضای زرفتش وجود داره انصافن با احترام کلی که من ایشان قائلی البته اینجا در کتاب مستدرک من ترجم میکنم احتمال می‌گم احتمال میدم ولی این محیم دلاله این قسمت نرسه تفسیح بکنن چون در عبائلی که جان احادیثش رو شروع بود دیگه از این کتب درجه لیده 3 چاپ نشه 3 و 4 و 5. لذا موجوده از مستدرک نعده. این چاپی که آن شده سعی کرده خیلی چیزایی که از مستدرک بوده بعد کتابش چاپ شده از اونها بیاره از مستدک نیارده. خلاص این تبولای میئرنی برسام چاپ شده خیلی وقت اون چاپ شده. بازم ایشون اینجا از مستدک نعده کرده. اینم این کتاب جمال احادیث این کتاب موجوده. مادا موجوده، دیگه نداره که انسان از کتابه ابن بستان نعبا کنیم الان یه حالت سابقا هم بیه مناسر یه صحبت راجی بگیم شاید تو نجوم بود به ابن بستان کردیم دیگه تکرار نکن انصافت با اینکه کتاب رو نجوشی یا کتاب یا معلف اگر از این کامپیوتر کشتون هست نگاه کنیم ابن رو حسین این فلان ابن بستان در کتاب نجوشی عواز شدید تصمیه من... ابن بستان بس بستان رو به کسر بال رفت کردن حالا اصلاف شاهرود بستان کرد به فرق تلفظ میکنم من نیدون چرا شاید سابقا بستان میگفتن شاید یه فارسی خاصی بوده الان خب اصلاف شاهرود که بستان وجود اصلا خود شاهرود رو در سابق بستان میگفتن شاهرود اسمش نیست بستان خود شاهرود این منطقه رو بستان میگفتن و مشهوره که در لغت ما فارسی ها این طوره در متون حتی در انصاب و ها بستان به کسر به بار شده نمیدونی شاید یه لغت پهلوی قدیم باشه حالا به این صورت در آمده پیدای چرا بله خسینم دو بلعخی. ها بینید به و لحفی نه به لحفی باید به لحو باشه و لحفی کرده چون مرمومه نجاشی کتاب رو به هر دو نسبت میده دو تا برادر نظام اینجا میشون داره ابن عابستان. در مصدر که میده ابن عابستان. کتاب مال هر و لحفی لحو و در تشریح کتاب اون بابا هدف من آمده. مگر من یه مراقبشی کتاب باشه کتابش خیلی برایم خلاصه است. دیگه به نه این, این کتابت خیلی به می‌بازم خیلی برایم دیگه ها آلم به ماقال خیلی دیگه با ایشون ورنیم نمی‌شن نمی‌دونیم ورنیم شون نزدم وارشون بسیاری خیلی کسی رو تلاش ابن عبستان فیته بلعیمه عبی عبدالله علیه السلام از روزه اینجا مرسله باز به مرتبه ابن عبستان شما شمای بعدی فیته بلعیمه ام محمد بن جعفر برسی حالا <تصفح> <تصفح> من این شخصی که نیمیش ناسیم اون چیزی که ما خودمان شخصم در این کتاب ابن عبستان حالا ابن عبستان کتاب تبول عیمه دیدیم غالبا این دو بزرگوار از این استاد این میکنن که غالبا استادا ها و مشکل کاری نه بعد از این استاد شخص مشهوریه همیشه نه دا گاهی شخص مشهوریه اما خود استاد مشغوله. این هم نمی فهمیم تو شدیشون نمی کردن فیده عجیب این هم هست تو کتاب تی بلنده من دیدم. و هر ما اینجا از محمد بن جعفر برسی نهارو کرده که برد نمی این محمد بن یحیو ارمنی از همین خط قلوبه تضییف شده یا مجهول یا محمد این محمد بن که که دیگر ارکان خط قلوبه این مفضل ابن عمر هست به هست این دیگه به اصطلاح امروز ما های خط قلوبه ما هست کردیم با اون تطبعی که در مفضل ابن عمر شده اگر محمد بن سمان ازش میکنه احتمالا کتاب های مفضل بودیم اما چون خیلی افرادم داریم که غیر از محمد ابن سلام احتمالا رباطه شکایی باشه ناشد آثار مفضل مرهوم محمد بن سلامه در حقیقی فرق به افرادی که توش محمد بن سلام با غیرش همه. و بعد هم ارز کردیم برای مرهوم نجاشی به مرهوم مفضل محمد خیلی عباده داره خیلی بجروه رو تذیف میکنه و که ظاهرم ولی علم و حمدالله قوم... در حقیقت قومی ها قومی های قدیمی و عوائل بیمید شرف طولانی داره که جاش اینجا جا نیست ظاهرن بعضی این نوایات را قبول کردن یعنی آمادن در کلمات مفضل نامر به اصطلاح اروزی ما تنقیب و پالایش کرده. حالا چون یک لحظه منه که میسترار کن کسابه برای که کامپیوتر هست عبارت نجاشی را جوی مفضل نامر بخونید مفضل نامر جعفی بخونید یعنی انسان وقتی این عبارتی نه خیلی تونده محروم نجاشی را جوی مفضل نامر ابو عبدالله, عبدالله, عبدالله که دیگه هست بگید موشکل بگید برا مفضلات از ابو فاسد خب خیلی تنده لقدر میکنه هم فاسده دونم از همون سر با روایه خب از اونم نیم کتاب کافی هم آمده این ام مفضل هم آمده من مخصوصا مشکلش اینه که محمد عدن سنان توشن این چرا شده این رو ما یه تحرید تاریخی برش کردیم من چون طولانی است بحثای خاص خودشون رو میخواد به ذهن ما اینجور رسیده که حتی بزرگان اولیه قوم او دقصد کنید اونا وقتی با روایات مفضل حتی اون دقای دیگه از این کتاب ضعیب به طریق ضعیب ظاهرن مثل برخورد نجاشی نگردن لایو بابه هم سهرش نزداده فاسد المرس مسترور روایی ظاهرن اونها با یک دقت و با یک تعملی تصیل کردن پالایش کردن انتخاب کردن گذیر سال سال <تصفيق> خب خیلی نجاشه یه واسه چون دیگه فاسدون من تبلایی و ما قدیمترین قومی که دیدیم ازشان نر میکنه به هم نیستن از محمد ابن سنان احمد ابن محمد ابن حیسای قومی است به نظر ما ایشان ایش میتونن از قوم رفتن به کوفه میراسای کوفه رو به قوم موردن به این جمعه یه مفضل نامر بود و از همین طرق محمد ابن سنان هم, هم. اینه احمد ابن محمد ابن ایسا در اوجه دقت و ضرافت و علمیت و وساقت و جلالت و محمد بن ایسان خب خیلی متحمدت و گفتش دونه مشهوری، این نقل این دو از هم دیگه نقل احمد از محمد ایسان خیلی عجیب به ذهن ما میاد الان این مدار باید در کافی یا غیر کافی هست از محمد بن ایسان از ما فضل بر میاده به احمد ارشالی به ذهن من این طور هم چون نن ذهن ما به خلاف این نوشته های تندی که بغدادی ها راجع مفضل گفتن قومی ها با یک احتیاط بیشتری باش برخورت کرده. این آنگه گفتنی هر خوب داره بود محمد رسولان زعیف مفضل گفتن من هم زعیف پاس مذهب و ایسا خط و قلو این مضمون روایت و متن روایت خوبه ظاهرا تا اونجایی که ما تونستیم چون دنبال این بودیم چطور شدیم این پالایش؟ و تصییف و تنگی کروات مفظل. تو تو کافی ما احساس میکنی. ما دنبال باز عربتر میشیم تو ریش. قرین تنگیش. اینجا البته محمد بن ایامی ارمنی است خودش ارزش نداره. اما در کافی داریم احمدی بن محمد بن محمد بن اسرار مفظل ما. اونی که من خودم میگم. چیزی مثل اونی که من باید بذارم عرض میکنم. نکته اینه که چطور جالی و تاریخی رو میتونم به نظرم من میاد که اولین باری که احادیثیشان این مرغ تصحیح شد، تنقیح شد، قابل قبول شد. پس این توسف بعضی از بزرگان قوم بود. تا اونجایی که ما تنصیب بشه، به به به، دقیق بذاریم که از اجلا باشه که واقعا فوق باشه. این کار کرده احمد اشریس. ظاهرا در سفری که به کوفه داشته، میراث های محمد مفضل نعمر را حتی نسخه محمد بن که خود این نسخه محل کلام بوده در بعض جداره که خود کتاب هم مفضل در ایفه طریقیش هم زدیده طریق محمد نسخه هاش که این احمد اشعری از اینجا نرد کرده من احتمال میدهم حتی امسال کلیمی یا گاگای صدوق هم آورده. این رو برده. اینا کلهم یادم الان احمد اشعری اولی کسی که این اقدام رو انجام داده منحوم احمد اشعری الان کار خوبی کرده کر نشون داده که دنبال واقعیت علمی و این عبارات مرموم نجاشی احتمالا نازل باشه به میراس هایی که زمان ایشان با عنوان کتاب به مفضل نسبت داده شده خب اینا خیلی غرفاتی هست اما ما میراس های حدیثی هم از مفصل داریم که انصافا چیزه خوبی توش زیاد داره توضیح این مجمن خیلی طولاریست بگذاری نگره دیگه انشاءالله از کنم که ابن بستان فیتب بلعلمن محمد از جرفل برسی و ارمنی و محمد از انسانان مفضل نعمر بله و مثلا خب سند مشکل داره این دو سا روایت روایت شما ده و یا هر دو مضمونش راجع بود سه دیست که میده از هم یهودی و خودش یا یا دختراش با هم دیگه نفاسات از در در نفاسات دل دست در اونجا راجع پیغمبر انجام دادن این از همون قدیمم هم بحث کلامی و غیر بحث حدیثی و تفسیری اینها بحث کلامی هم پیش کشوده بود که آیا واقعاً نفس رسول الله در اون درجه هست که یه یهودی یا با چات دخترش با دو, دو دخترش بشیره نفس رسول الله تا تعبیر سر قرار بده صافم خود من هم خیلی اصولی ببین دسته ندارم دقیقاً نه که بد نیست سندم هم داره اما انصافا قبولشون میشه حدیث شماره دوازده در خسال و معانی شیخ صدوب آمده و این رو ما کندیم یعنی در کتاب سال خوندی. سال کندیم سال و سال ترخیص, و و ترخیص کرده بود یکی از خوبیه آیه این کتاب ترخیصی جمال حسانی ده همونجا که حس میاره سال و سال دایید میانه حتی از این غلانون اسم نفر تا ده پشتش میبره سال و سال میکن دو تا این رخیش هست. این خوبی هست در این کتاب جمال آهادیس که متونه کتاب رو دست کاره نمی کنه همونی که هست همون میاره و ارز کردیم که این حدیث برمیگرده به امیمونسای اشعری و این حدیث الان در میان مسادر اهل سنت هست فقط این حدیث اینجوری لایت خلونن جنه سلاستون مد من خمر و مد من سه ارز در کتاب اهل سنت مصد قصه به جای مدمن و به نظر من مدمن سه معنا نداره مگر از گفت گفت مشاکله بقیده قاون علمای بدی صنعت مشاکله باشه اضافه مدمن سه مصدقه به سه یا مؤمنان بسهر. به سه به جای کلمه مدمن دومی اولی هست مدمن خبر هست اما کلمه دومی این توضیح جدید در کتب اهل سنت همین حدیث توسط عبی برده عبی برده کنیه یه پسر خود عبو موسا عشریه پسرشه عبی برده ان عبی هم عبی موسا ان عبا برده از دسته و عبی موسا موسی موسا کس دیگه باید میشه عبی بیگه عبیش انداخته عبو برده پسر و هر سوزه مشایخ معاریف حدیث اوالش خراوی داره بعد از معاریف احل سنته. این چون توضیح سابقش دار دیگه ما تکرار نمیکنیم. در کتاب تصبیب فرات کوفی حدیث 13 قال حدثني قال فرات حدثني عبدالرحمن ابن محمد ابن حسن تیمی بزاز از اگر ما خود فرات را سیم گفته شده یعنی شاپه جدی کردن که اینا مثلا از ردیاس درست دقیقا نمی‌دونیم الان در هر حال انصافا مرد کثیر الحدیثه اها مستشن توش آثار خط قلوب و قلم و ذرف و تخلیل اله ما الله خیلی فراوانه از خیلی از یک راوی کفیست به نام جعفران محمدر من مالک فزاری از اون هم خیلی نهارم میکنه که محبوب نجاشی به شدتیش رو تضعیف کرده جعفر رو حالا یه حاله یک جایی هم مثل اینجا نوشه معهنن روی عبدالله، هم به نظر نسخش متعدده بعد جایی که نوشه معهنن در این نسخه چاپ جگ سند رو آورده این سند اسمی هم که به سند هست بعد انعبی عبدالله انعبی هنجند یه قال خطر و علی انا منبر کوخه یه خیزه احادیس کلامات علی رو محمد خب در رواید هست و کان فی ما قال و الله لدیان و ناس یوم الدین به حساب و به حساب و علیکم تو نشب چیه جامعه داره و غسیم و جنت و نار این هم به اصلاحی هست که معروفه لا یک خلاحد داخل الا احد قسیمه و انی الفاروق الاکبر و انجمی رسول الملائکه و الارواح قول قول خرب یه روایت اینطوری و از کردم قطعات این روایات شواهد پرامان دارد وقت در آخر این روایات در آخر این روایت بله در وسطش داره و مننر رقیب و عقل خرب و نحن قسم الله به او بین عباده از یقول کاستا والله لا تسالوا لي بالارحاء ان الله كان عليكم رقيبا و اهل ذيتنا اشمان الله این حدیثا گذشت همینج گذشت اما هم ایشون کامل آورده فتانی او کزابی او ساحرین او زیافی از کلم در یک مصحف زنائین هم بود در وصایل خوندیم ظاهرم زنائین بی معنا باشه بیمزه باشه, باشه همین زیافین بهتر باشه و منه قل و قشه زبان پاسی قضیم میگفتن گندم نمای جو فروش یعنی زاهد شنشون جو فروش گندم زاهد گندم نشونده که جو میشوشه گندم نمای جو ما اهل قل و قش و مط و و فریب و سهر نیستیم چون این شاید دیده باشیم قیل از این که حالا خود جایلی پیغمبر اکرم رو نسبت به سهر نیستیم یک عده دراجژ اهیم این اهلده سااهر یا یعنی از یا ها دوگو هستند مخصوصا وقتی که اینها مطع خیلی عالی رو به میکرد او همین ن در نجربل های تی داره شهرنجگاه های میانکنجل سوم میشه اخبار علی به مغیاتیه ای داره در غجر ها در بحث مسئله مسل که مس سیل میشه اونجا جنگ نگاه بکنید چند به چی به مسجد کمه هالا فیل که جو جو سفینه اگر لفظه جو جو رو پیدا بکنیم تو نهجا بلا بداره در غیرینیم جو جو مثل سینه ی کشتی که این کوفه که قرار میشه این مسجد مثل اون اول کشتی مونه طبعاً مسجد کوفه تا زمان مرحومه یعنی شهر بسته کوفه گفتن مسجد هر جو کوفه بس. در شهر بسته که حضرتیم فهمان در تا زمان ابنال حدید دو مرتبه قرض اینجوری برای بستر میاد، هم نوشته دو مرتبه وقت در اونجا نه میکنه که یه بار امیر رو مونی منبر نه یه بار از این قیدیات رو چیه میشه چیه میشه یکی از این عربای احمد کوی منبر بود گفت سبحان الله ما از سرگ کار من چقدر قشنگ دروح میگفیم یعنی با فرقه دو یعنی نستجیر رو به الله و احل بیت با قولش حضرت می‌فرمایید که ما نه دروغ نه ساحر هستیم نه زیافش هستی. این حرفایی رو که ما نسبت میدن اساس نداره ثمنکان فیه شیء منها غیر خصال فلیسه منها اینم تو وسائل گذشت این عبارت گذشت تا که در اینجا کامل‌تر زاده وقت این یک چیزی هم که خیلی لطیفه بعد امیرالمومنین بنوزم اهل امبه را شدیه نمیخونن که در خطبه شام که حضرت سجاد بودن احتان الله و عشر خدا به ما در خیصد داده لن تکن لعهد قبلنا ولا تکن لعهد بعدنا ظاهرم موردشون به سورد جمع به این کیفیت به این درجه و به این مجموعی کسی نه قبل از ما بوده نه بعد از ما آیه مواجده که از سلیمان فرموند که حضرت ممکن لعهد غیل عهد من غیل یا من بعدی. نه انسان سرف ملکری که خدا به داد نه قبض نی ولا بعدی از سلیمان هم بالاتر هلا باد سلیمان مال بعدیشه این یکی ما نه قبض چه نه بعدیشه ارثان زللا ولا سکون لا احد بعدنه الهل ونعن ولب اندیشه و مرض و نبوه و شجاعه و سخاوه و سر و اطهاف و طهاره سنه نور مثلا یه حدیث سندش ضعیف بود تو تفسیر خدا اما هم متنش خیلی تشنگه و هم شواهد خارجی زیاد داره و هم به لحاظ ادبی هم خیلی زیباسته مثل همون خطب نهجو بلاغ هست فنحنو کلمت تقبا و سبیل الهدا و المثل الاعلا و الحجت العظم و العربت الوسقا و الحق لذی اغرالله به فما بعد الحق اللذالال فانا تصرفون هم دیگه حدیث همیشه خوندید برای تورکی که داره که به و میشه نه ابل میشه شما خوب این متون خیلی عالیه باید مال فرات باشه مال اینجور افراد نباید باشه که نه نهج البلاغه اصلا مبادی اینجوری نداره خود محمد سیلی رزی خیلی جنبه های اونطور حدیث شناسی نداره که دیگهش هست بعد ریش ایشان خیلی از این که خود متن مسخره داره این مشکلی داره اصلا که که حلش خیلی مشکله خود روش سید رضی هم واضح نیست مثلا یه خطبه واحدی رو که در سه چهار محتر آمده به قصه شون شا... تو صفین یه دست سه چهار متن داره دو متن در دو جا آورده با اینکه خطبه هست بعد تخطی زیاد داره ایشان خیلی تخطی داره وحشتناک تخطی داره در بخش خطب زیاد داره اون آهیون سب اسمش کردیگه ختب و کتب و بعدن تلماز قسار حکم در بخش حکم که از این می مثلا بالای 90% این حکم جز ختبه وردشون اونجا عورده اگر نهدوالاقه درست خطبهاش ورد وصل و پینه بعضی زمان محاصر این کاره کرد وصل فینه بکنیم خیلی به لحاظ کارهای حدیثی تو کار نهدوالاقه ریجعلئی اصل تصاحل من گوی تعریف تصاحل اصل اصول بنده هست مبناش این بوده دیالمیه یه خطبه رو آورده همش کامل آورده یه تیکایش آورده باز یه تیکه‌ای دیگه چیزی آورده باز یه متعاتی چه از خودش که انداخته باز تو بخشی حکم آورده خیلی از این جهت کتاب در متن منتخب خیلی یعنی مشذزش کاملا کتاب نرج بالا با عظمتی که داره و انصافا هم خب سید روزی خودش مکتب بردازه خبرواهات حجت نمیدونه بعد راجع به امیر ما قدیمتر ترین کتاب هایی که داریم راجع خود خودتا به امیر امیر از زمان امام ام ام ساده به ها حالا بگذیم که بعضی از اونها به خط خود حضرت هم به از ها موجود بوده کتاب از که که از مذایع امیر المومنین که خط ایشان تا مدت ها بعد موجود بوده کتاب نهره ابن ندیم قبل از وزیه 3780 ابن ندیم بگیم این گرفتی رو دارم در واسط یک بخچه داره از نوشته که به خط خود علیه بمونه یک در سال سال, سال و یعنی یعنی پنجا سال قبل تدریم مهده برام خیلی فاصله کمی اصلا نوشته سفت سفت همی مثل همش نوشته ها خط نوشته ها به خط خود علیه ندیم ابن ندیم نمونه دیگه و که بگه وقتی که ایشون فوت کردی اینا گون شد نفهمید کوچش شد متفرق شدن میگه کارنلیس حدی به مجائن ظاهر مجائن یا واسط، حالا من یادم نگاه بکنی داره یا مدارن یا واسطه کانه اندو صفر که سین و فا و تا تایه دست داره است که نوشته های دستنوشتهای خودن این از مزایای این بلهوزه نقل ها حالا بذ از اونه که سند دار و اینها و اولا ما چون انیر مؤمنین روزی یکی از خطبای معروف بود ایده از خطبه از خیلی زود ما یک محمد بن قیس که کیرم از اونجاست که نجاشی اشتباه کرده، خیلی شهر اینجا خیلی شهرت شد اولماهای بزرگ ما هم اعتصفت نشود یه محمد بن قیس داریم این رفیق دی محمد بن قیس در واتماس نداره نجاشی اشتباه کرد با اون اوردش کرد این محمد بن قیس کان قاص عمر بن عبدالعزیز این سال 100 عمر بن عبدالعزیز میگفت یه مقداری از خطب امیر و این گفته می شون این به کی ای بر به قدیمه یه مقدار خطب امیر و مومنی رو امام صادق به مسئله صدقی یا مسئله رو زیادی که از این مسئله ها قرم داره نجاشی داره یه مقداریش که خب در همین کتاب بوده که نام آدا و قرن و مومنی داره قرم این تقید ها سه بوم اواله قرمه سه بوم دیگه ها رو بر موجود بوده اینطور نبوده که بعضی از این احمقای اهل سنت نوشتن که این هر کسی نگاهش کنه میفهمه این جهلیه کار خود رضی. حالا اینا سنی هم حالا از عجایب روزگاهی واقعا خداوند می‌خواد حجتش تمام بکنه مگر آدم بی‌شعور باشه. رضی رحمه الله علیه هم یک مقدمه‌ای داره هم در بین بعضی از خطر یا کلمات فسار مطلبی داره. حالا غیر از کتاب‌های دیگه‌ش، تفسیر تعبیر خود رضی داره. همیشه اصول کتابونه بین متن ادبیات و ادبیات با در واقع تفاوت از یعنی تو اصلاً در این دلیل از نمیخوای همون خطبهی ناجور برای اینکه کلاوریه انسان میخونه با کلمات دنیوی و ما میگه ما رفیق میشه رفیق بیا جر بکنه و خطبهش رو به ظریف بنویسه آنکه که ما دقت یعنی ادبیات و سررزی یه چیزی نیست که مجهول باشه ما خبر نداشته باشیم یه ابن نباته داریم که رد از روی ایشون خطبی داره معروف بوده خطب ابن نباتر موجود اصلا قابل ریاضت بعضی باید بعض از خطب اهل و از نظم مال ابن رضی میگه من میگم رضی ابن ولید میگه میگه هر کسی که یک مقدارش هم آورده جایی این مقدار از خطب ابن نباتر آورده میگه هر کسی که اینها رو بخونه مثلا میگه خطبه آورده ایوه الناس از ظهر به فیکون بوغور میگه شما این کلامی بوخی آورده یه چیز نامعنوس یک چیز, چیز حرف توی نحضر باقی کلمه بوگ رو هم همون ما دارید نقاط هست بگیم مناسبه غرصم این که شواهد خیلی فرامنده در خیلی مشکل نحضر بلاقه ده. یکی از مشکلاتش این است که متاسفانه پیدا شده خیلی تشویش داره در فن حدیثی این مقدار تختیب مگر بگیمشون هدفش جنبه های کلامی و بلاقت و زیبایی و اینها بوده کاری بدون جمبه های فنی حدیثی در, در از اون جمبه های فنی حدیثی خوده قدرد کنید و حدیث شناسی و روی جمبه های فنی حدیثی نه برای خالی از لفت نیست داشته رو جمبه های بلاگی و زیباری چرا انصافه قبول بکنید که خیلی زیبا آورد حدیث شماره 14 رو مرحوم صدوق آورده این من به نظرم اونجا باز خونده باشین تو کتاب و س یه اله یه حدیثی است که در کتاب طبونی بوده و قبل از صدوق هم مرحوم کلینی آورده یه حدیث خلاصش اینه که زنی به پیغمبر میگه من به شوهرم یه چیزی دادم برای اینکه محبتش شه فقال له رسول الله اوف لکی کدر تل بهار کدر تین دریاها رو بسه آلوزه کردی خواب رو آلوزه کردی و لعنت کل ملائکتال اخیار ملائکه گفت اخیار <متصر> طلب های نجب شوخ بودی مقدر پیشه این پازشاه نهار مفصولی بشترد گفت سلوه علیک ملائکتال اخیار الا جمرئی به پازشاه پازشاه گفت چای جمرئی گفت اون منتظر چای اگه چای هور بیدم سلوه علیک تا چایی <متصر> اون یکی به من خصوص منتظم چایه ولن هم کلید کلمه من هم درمیاده بود شوخی بود آفده ولن هم کل ملاحکت الاخیار دیگه اینجا حتما با جه بگید و ملاحکت سماواته ولن قال فسامت المرأتو نهارها و قوامت لیله ها و حلقه رأسها البته اینها که اصلا حلقه رأس کفار دازدی چیزی داره و لبستت الموسوح پارچه های خشمشید خب بالا که از نبی فقال ان غزالی لا یقبل منها خیلی عجیبه خیلی روایت خیلی متن عجیبی داره هم حق با مرحوم کلینی هست و هرده به هر حال این روایت دارم در کتاب سکونی بوده استنان ما به ثبوت روایت در کتاب سکونی هست هم نقل مرحوم فقیح در جعفریات هم آمده در جعفریات هم همینطوره کل این یک بحثی بوده حالا اینکه خیلی متن عجیبی هم هست این شاید تو بحث عرض می میکنیم یه بحثی بوده که آیا ساهر کافر یا مرتده <تصفيق> یه بحث بوده که ساهر کافره یعنی یقتل الا انیتوب اگر کافر باشه توبش قبول بشه. یه بحثی ادهی محتم نه ساهر مرتده یقتل ولا یقبل توبتو این فقال این که لا یقبلو منخواده قرار کرده این است بر اون تصور که انسانی که سهر میکنه توبش هم قبول نمیشه لیکن انصافا نه کفرش ثابته نه اقتدادشیش که اینشالله بحث میکنی برد علایه حالا این روایت مطن عجیبیست چون اون حلقه رأسا که جایز نیست لبسته المون این کارا چیه کاره بله ظاهرا با یک الله خدا میبخشید دیگه اینقدر مقدمات ما اخرات میمخواه بله ها بله چرا نمیشه قبولش کرد قبول. آی خویی که حتی معتقد بودن که مرتدن توبش قبول میشه خلافاً مشهور لازم قبول میشه باطنن نه ظاهران آی خویی کردیشون این بود حالا ان به یک مناسبت این بحثا رو با جوی خودش انجام بود حدیث شماره 15 قرار از این حدیث شماره 14 در کتاب سکونی آمده و خیلی حدیث عجیبیه حالا من تو نسخه خودم اینجا جا نسخه جدید به این حدیث من در مصادر اهل سنت هم دیدم به نظرم از انسی کسی جای نفت نمیاد یه چیزی من دیدم ازش حدیث شماره 15 در قص راوندی فی لب اللباب به نظرم لب هم چاپ شده باشه تازه این این در این ورکشاپ نشده بود بله لب اللباب عن ان النبي انه قال مراسیله ان الله يرحم اساط امتی فی ليله المبارکه بعد شعوره اقنام بنی کل و ربیعه و مدرک چون اینا زیاد گوساندارای بزرگی، می‌دونید که مثلا میان زبان عشایریش میگن عشای گوساندارن بینا هم بنی کلب و بنی ربیعه و مزر اونم تازه بعد موی اونها بذر موی البته اغنام غ... گوسان که غالبا مو نداره مو مال گوزه گوسان که پشم داره حالا شوخی‌ها مجازیه کار بوده شده لب شعر رو به کار مجازیه اصلا در لغت عرب شعر کنایه از گوزه نحن اصحاب شهر یعنی مثل کسانی که اصحاب شهرن کسانی که بوز دارن اصحاب وبرکر کسانی که شطور دارن اسطلاحشون فیغ فرله الا سمانیت نفر که نمیده شه المشرق و کاهن و صاحب و آق و آقل و و مد من الخمر و زانی و ماجن ماجن افراد لاعبالی افرادی که همین کارهای زشت انجام نیجه چیز نبن باز در لب و لوباب این اینو الان از کلم و از همان یخروج عنق و یا عنق من النار یک لهید از آتش در میاد. که يقول عین من كذب على الله و علا من عین من زاد الله عین من استخف بالله فيهولون من هذه الاسماء و الثلاثه قالوا فيقول من سحر فقط کذب علی الله این روایت تشدید است درم خب سند نداره و من صبرت کساویر فقط واد الله و من ترا عفی اعمالی کسی که ریاکاری سعدت لله خدا رو سپاس بمورد. مواظب باشید تا بول زیاد. ثم اصطفا بالنهار شماره 17 همون مصری در علل که ما در وسائل شرح دادید. دیگه, دیگه نمیخواد تو مثه. شماره 18 شماره 18 بعد بله. حدیثی از تبول عمه خیلی عجیب اون قبیار از مستدر نقر کرده بود. اینجا مستقیم از تبول عمه این به اصطلاح حدیث شماره 18 رو ایشون در اونجا داره سهل ابن محمد ابن سهل نمی شناسیم ان حدثنا ما ربه بن محمد ابن ابراهيم که ان ابن اورمه ابن اورمه از بزرگان غلا... از بزرگان یعنی از شخصفه علمی است آثار داشت در قم بوده متهم به قلق و هست ببینید مثلا افراد مجهول میان بعد بر برمیگرده به افراد شناخته این اگر شیده باشه گفتیم که شخص متهم به قلق بود یکی چیز بدن ترور شود بکشن قمیا همین ابن اورمه یکی چیز مثلا اینکه یعنی از اول شب تا صبح مشروع نماز دست میگرداشت یاد میکرد نماز نمیخونه مثلا عنی ابن موسکان از همون خب گلوبش احتمالاً گلوب سیاسی بوده مرحوم آقای توستانی میان گلوب در اون زمان ترک سلاس بوده این دوقات هم بوده این نه شاهده نشه یکی از آثار گلوب و انهرافی ترک واجبات بوده نه خصوصی سلاس عنی ابن موسکان انل حلوی افته شده اگر ابن موسکان باشه مراد محمد است. اگر حماد انه حلوی باشه مراد عبید الله حلویست است. برادران حضور آل سهل سعب عبدالله علیه السلام انه نشرت للمسخور نشر انشالله اگر خداوند نمتعال توفیق بده این اصطلاحات رو در بردی کتب تاریخی مفصل تر داره انواع اسطلاحاتی که نشر این نوع به اصطلاح مثل همین تلسمات خوندن مثل ما به فارسی عجی مجی شبیه روغیه در این حاشیشم نوشه روغیه یا حالا جبهه هل مجنون همه مریض فقال کان ما کان عبی یرابیه به این شبیه همونی که با سهر میکنن حضرت همون که خلل بلا سعقه از که در قبل از اسلام اگر خداوند توفیل داد یه نقود متون روغیه هاشون و رو این تلسماتشون رو می‌خونیم برسون و بعدم به خود پیغمبر نسبت داده شده که مثلا روحیه یا ته مثل عجیمجی عجیم های ما در این کتاب چیز در این کتاب همین جامل احادیث اگه آن داشتن همین جدی که دستی من هست صفحه سی, سی مثلا بعضی از روحاش بله اینجا داره این در کتاب دائم ادارت تن ترقا اینجا ترقیه نوشته قلطه اداره تن ترقل جرح یعنی من الالم و دم اگر میخوایی جروع زخم رو رقیه بخونی و ما تخافمه علیه فضع که علی جرور دست بگذار و بول. ببینید بسم الله این یک نوع جمع ما بین هم مفاهیم دینی بوده هم رقیه بوده بسم الله ارقی که بسم الله ال اکبر من الحد والحدی حجر الملبود ملبود و ناب الاسمن ول ارد فلایم ارد ول این فلا تسهر حالت عجیم اجیه خود من مخاطر شاهی وزیاد خودی کتار رو مام داره این حالتی ایده که استلاحاً به این روغیه میگفته شدیه از پیغمبر نقل شده از عرب هم زیاد داریم یه چیز هم هست که حالا این مفهوم اعقلانشون عربی میشن. این چیز هم هست که در بعضی کتاب‌ها اینو به از هندی و اردو بوده اون که اصلا اینکه نیستیم به لغت هندی عادی اون رو اصطلاحاً منتر میگفتن. درست فرض کنید این اصطلاح اصطلاحاً یکی از به اصطلاح رقیه های تعارض کردن که مثلا بوده این مراد ان امنوشر المسور فقال ما کان عبی یرابهی برسرم دیگه یک حدیث هم از احتجای دارم بخونی دیگه و این حدیث آنه سنده زریفه یعنی مصدرش هم خیلی روشن نیست بخونی. حالا شاید کسی به فوائدی که من ناینه گفت مرحوم نجاشی فرمدن مراد مثلا مطالب خوبی دارم مکنه کتاب احتجاج مرسلن من سؤال زندیق لذی ابو عبا عبدالله مسئله کثیره فا اخبر عن سه ما اصله و کیفی عبدال صاحبه علا ما یوسف من اجائبهی و ما یفعل قال علیه السلام عنه سهل علا که من دیروزم اشاره کردم منها وجهن منها به منزلت تب در این کتاب احتجاج آمده که یک وقتیش من دیوز اگه یاتون باشه از سرین این قسم بیشتر تو مدینه شد چون در مدینه یهود زیاد بودن یهودن سهر میکردن یکی از سهرهایی که یهود میکردن برای معالجه مرین ها بود بگذر آمون اینکه این که منها به منظرت طب کما انمال اتبا و زهول کل دائم دوا کلاله که علم سهر یا علمه و, سه، و کل سهتن عافیت به کل عافیتین آهه و کل معنن هیله و نوع و آخر البته چون این حال چند چنوع فرضی من سریع میخوام توضیح بدم بخش بهار که ان شاء الله میگی نوع اون آخر خفتون تر امام یه سه نیست اینا تر و مخارید مخارید کالهای خلمدنگی به اصطلاح و خفتون تر و, و سرعت و نوع اون آخر مایع خود و اولیا و شیطان انو اینا ارتباط با شیاطین دارن قالت همین این علم شیاطین از سه خب شیاطین از روزی سوال سآل که زندگیه هر زمان ارتباط از رو بیاد گرفتم بیاد گرفته شیاطین هم تب سهر بیاد فقال من حیث و عرف الاتباغ بعضو او تجربه و بعضو او علاج خیلی لطیفه این مطلب یک شهر تیزه که جشم اینجا نیست قالت هم ها هاروط هم, هاروط هم, هاروط هم ها تقول فل ملکه هاروز هم هاروز هم ها یا قول ناس یا نهما آله اینه همه موضوع اقتلاب موبه و فتنه تسبیح و همالیون اون دوتاست لوفه على الانسان کده و کده لکانه کده و کده ولو یعالش به کده و کده لکانه کده یا یعالش هردش به که اصناف سه فیتعلمون من ما مایخ رجعان همه فیقونون نه همه انه ما نحن فتنه فلا تنه حالا انشاءالله تعالی بعد بقیه حدیث رو تو میبختمون شده ترده توزیاری همه